اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و علی نبی نا و آله خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنیم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 خدمت شما ارز کردیم که اتناب عبارت است از اینکه که لفظ بیش از معنا باشه اما شرطش اینه که فائده داشته باشه بعد گفتیم اگر لفظ بیش از معنا باشه ولی فائده نداشته باشه یعنی زیادگوی باشه این رو بهش میگن تطویل یا هشت که گاهی اوقات توی فارسی میگن کلامش دارای حشو و تطویل یعنی دوتا رو به شکل با هم میارن یعنی زیاده بدون فایده گفتیم تطویل زیاده بدون فایده است ولی با این قید که متعین نیست کدوم زایده ولی در حشو میدونیم میگیم این زایده درست شد مثل دیروز گذشته که من برای شما مثال زدم خب قاعدتا لفظ گذشته زایی ما در رابطه با اتناب دو موضع از موازش رو خدمت شما عرض کرد یکی ذکر خاص بعد از آم بود چند مثال هم ما از کتاب و خودمون خدمت شما گفتیم گفتیم که ذکر خاص بعد از عام غرض و فایده‌اش تنبیه مخاطب بر فضیلت و شعن اون خاصه که به شکل تافته جدا بافته ذکر شد دومیش ذکر عام بعد از خاص بود. گفتیم فایده این دوتاست یکی این که فضیلت اون خاص رو نشون میده که اون خاص تافته جدا بافته بوده و جلو ذکر زک شده. ذکر خاص شده. و ضمنن دوبار هم ذکر شده. یه بار به طور خاص. یه بار هم در ضمن عام این باعث شده که فضیلت داشته باشه خاص. یعنی انایتی به اون شعن خاص بوده از نظر مخاطب دوم افاده عموم. یعنی دیگه کسی از قلم نیفتده باشه. این دوتا رو بیان کردیم. و دو تا آیه هم برای شما تو امسله آورده بود تنزل الملائکتو و روح و فیها یعنی تتنزل الملائکتو و جبرائیل فیها این روح الروح، نام جبرائیل جبرائیل پیام فرشته معمول الهی برا رسوندن وحی به پیامبران است که بالاترین فرشته است، رج شگان بود که یعنی همه ملائکه میان حتی جبرئیل هم تنزل و پای میاد از آسمان در علایت قدر مثال دوم این آیه بود طلبق فرلی و لوالدایه و لمن دخل بيتك يا مؤمنا و للمؤمنین اول مؤمنات که اگر گفته بود ربق فر للمومنین اول شامل ماقبلی ها می شود. بلکه این رو به طور خاص اون ماقبلی ها رو ذکر کرده چون اهمیت به اونها بوده شعن اونها رو مخواست بالا ببره براش مهم بوده بعد للمومنین و مومنات هم آورده که شامل حال همه بشه موزه سوم در قواعد نگاه کنید عبارت هست از ایزاه بعدل اام پس ذکر خاص بعد از عام یک ذکر عام بعد از خاص دو ایزه بعدل اام سه ایزاه و بعدل اامه اول مبهم بعد مفصل که اصطلاحی دارن بلاغی ها میگن ذکر شی مبهمن ثم مفصلا اوقو و شد دوفل نفوس شی مبهمند یه چیزی رو اول مبهم بگی. بعد توضیح بدید این اوقع و اشد دفع نفوس بهتر جا میگیره و شدیدتر جا میگیره در روح شنوندگان. اون مبهمه تحریکشون میکنه یه چیزی رو میفهمند وقتی تحریک شدند مبهم اصفراشون میخوان مطلب رو بفهمند مطلب رو وقتی شما توضیح میدی بهتر تو ذهن اونها می نشینه و ما کمتر خود ما امین تو فارسی رعایت میکنیم ما اول مبهمش میکنه بعد توضیح. مثلا فرض کنید تو همین سوره تنزل المرایت تو و روح و فیها سوره قدر اول میگه چی؟ انا انزلاح و فی لیلت القدر بعد میگه و ما ادراک ما لیلت القدر چی به تو خبر داده لیلت القدر چیه؟ از کجا میدونی لیله القدر چی این مباحثا یعنی تحریش کرد میگه لیله القدر عجیبیه میگه ها تو از کجا خبر داری لیله القدر بعد توضیح میده لیله القدر خیرون من علف شهر اگر این تیکه وسط نبود ها گفتش که انا انزلناه فی لیله القدر لیله القدر خیرون من علف شهر کامل بود کلام این اضافه که آمد اول کلام رو مبهم کرد سوال ایجاد کرد بعد توضیح که داده شد کاملا در ذهن از که لیلت و غد وزیلتشی و موارد زیادی این چنین وجود داره درست شد؟ که ما ذکر میکنیم یه شیع رو مبهم بعد مفصل توضیح میدیم تا بهتر دو دل مخاطب بشین نگاه کنید این قرص چیه؟ لتقریر تقریر یعنی تسبیت برای تسبیت معنا اون مفهوم بی ذهن سامه برای تسبیت معنا در ذهن شنوند که گفتم قاعده بلاقش که تا دیگه چیه؟ ذکر و شی مبهمن سم مفصلن و اشد فن نفوس یعنی در نفوس حالا یه مثال خودش از قرآن میزنه نگاه کنی میفرماید و قانه و قضینا الیه زال کل امرد الیه قضا با اله اومده به معنای اوهاست اینو میگن تضمین کرده قضا معنای اوها رو یعنی اوهینا الیه وحی کردیم به سوی او اما چرا خود اوهینا رو نگفته تضمین کرده قذینا معنای اوهینا که اون معنای قذینا هم توش باشه یعنی اوهینا الیه وحیان قطعیان وحیان مقضیان یعنی به طور قطع وحی کردیم به او صفت و محکم به آن پیامبر وحش کردیم ذلک امره اون موضوع رو اون موضوع رو توضیح ندیدید کجا ذلک مفعول غزیناست عل امر عطف بیان شده ما اون موضوع رو بهش وه کردیم بعد میگه چی ان نداب رها مقتول مصبهین این ان نداب به تحویل به مصدر میره این بدل است از ذلک الامر توضیحش داده جای اون میشینه ان ندابره اونی که بهش وحی کردیم به طور قطعی بهش گفتیم اینه ان ندابره دابر یعنی نسل این که بازماندگان این جماعت نسل این قوم قوم لوت ان ندابره ها اولائه مقتوع نسلشون قطع کرده شده است نسلشون ریشه کن کرده شده است مصبهین خالص از برای زمیر داخل مختون که برمیگرده به دابر چون دابر در معنا جمع به معنای نسل که چون نسل اینها هنگامی که وارد صبح بشن دیگه کنده شده. دیگه اینها بگید اثر روی خروجی ندارن تمام شده. حالا اگر از اول اینطور گفته بود. نزه اینها الیهه ان دابرهاء الله مخدوم مستنیع نا دابر ان دابره اولا مقتعون مسلمین تعبیر ما ازشون مفعول قضیه و کردیم به او که نسل اینها صبح که وارد صبح بشن تامون بشه تامون بود کامل بود. این ذالک الامر اومد واسه چی ذالک الامر واسه این که اول مبهم کنه بعد توضیح ما خودمون مثلا اگه برای یه نفری یه کاری رو کردیم میخوایم خوب تو ذهنش جا بگیره که ما چه کردیم و تاکید کنیم میگه آها های فلانی فلانی میگیم، بله میگه فلانی اون کاره رو انجام دادم برات بعد میگیم وامه رو برات درست کردم. یا اون مطلب رو گفتم فلان چیزو به فلان کس اول مبهمه شما که اون بگیم کدوم مطلب ذهنش مشغول شه کدوم موضوع رو حل کرده برام بعد تا بخواد مطلب داشته شد بدلش میاریم میگیم منظورم وامه وامو درست کرد ما مدل با این زندگی میکنیم اینم همینطوره. اون قضیه رو میگه ما بهش وحه کردیم. اون قضیه چی بود؟ این که نسل اینها قطع شده. از بین برده شده هنگامی که وارد صبح بشن وارد صبح شدن دیگه از نسل آباد اینها هیچ خاوردی نیست. خب، اینم مدل این. پس سهمیش عبارت شده از الیزاه بعد ال ابخام تو بحث نگاه کنید توی بحث تا للمومنین و المومنات ما عرض کردیم خدمت شما حالا بقیه رو از, از اول میخونم بحث رو نگاه کنید عرب تفی ما سبق معنیل ایجاز شما در گذشته معنی ایجاز رو فهمیدید و نلی و هانا ننش حل که نوع آخر منل صالیبهی قابل رو و یزاد دو و ما میخوایم الان یه نوع دیگری از سبک سخن رو براتون بگیم که مقابل باعوس و متزاد به باوس و نزید وفی و تضید و فیه على معانی لغ از این بلات توش الفاظ بیشتر از معانی است برای یک نکته و غرض بللا. تبل المثال اول مثال اول تجد لظ روح فی هزار لعنه معناه داخل فی عموم لفظ المذکور قبله وهو که چون ملائکه الفلام داره جمع هم هست عامه جبرئیل هم فرشته است داخل ملائکه هست و انظر فی تجد اند لفظ لی ولی والده ولی من و لوالديه و لمن دخل بیتی مؤمنا زید ونizem لدخول معناه فی عموم المؤمنین و المؤمنات المؤمنین و المؤمنات الفلام داره و جمع هم هست یعنی همه مؤمنین و مؤمنات نزا اون لی ولی و آلده و ولی من دخلا بیتی داخلش هست و کزالی که یشتمل و کل و مثال این منر امثلت الباقیه تهالا زیادت لفظی همشون یه زیاده لفظی دارن اضافه در لفظ دارن نسبت به معنام ستعرف و حافی ما یعتی که ما یکی که توضیح بدیم میبینیم و ستر و عیزن انه زیاده لم تجه عرصات میبینی که یه زیاده بیخوری نیمده و این نماجاعت للتیفتتن بهن لطای بلانقی یااطلتی تضید و دیمتل کلام و طرف معانی و میبینی که این اومده برای نکته این زیاده برای نکته ای از نکات بلاقی اومده که قیمت و ارزش کلام رو بالا میبره و معانیش رو ارتخامید و عدا کلام کل ال حزن و به سما نابا کلام رو اینطوری بیاری بهش میاناطد. اجلا اممسلت وب و ها واحدن واحد بعد از مثالها تحقیق رو یکی یکی حالا سه تا شما خوندید میچ. طج تو رو غله اتنابه فیها مختلفا می‌بینی طریق اتناق توش مختلفه یه جا ذکر خاص بعد از عام یه جا ذکر عام بعد از خاص ده. یه جا ایضاح بعد از اطلاق و طریق و طریق و المثال الاول ذکر خاص بعد الاوض توضیح میده فقط خصل الله سبحانه و تعالا از روح به ذکر خدای تعالی روح رو به طور ویژه ذکر و او جبیل و مع اون داخل فی و اون عبارت است از جبرئیل در صورت که اون داخل در عموم ملائکه بوده. چرا نگاه کنید؟ خصل الله سبحانه و تکریماً در روی الله برای فصد خدا به جهت تکریم جبریل علیه السلام این کار کرد و تعظیماً به شعنه و به خاطر بالا بردن شأن بود که اننه جنس آخر انگار اون اصلا تفته جدا بافته است یه جنس دیگه از عطف شده ظاهرش اینه که انگار این یه تفته جدا وافته است که عطف شده عطف دلالت بر مقایرت میکنه دیگه ففاعدت و زیادت و غنا از تنویه اعلان تنویه و اشاره و اعلان است به شعن الخاص به اینکه این خاص یه ویژگی داره به شکل تافته جنبا و طریق طریقه به المثال ثانی ذکر آم بعد از خاص فقط زکران ما سبحانه و المومنین و المومنات و همه لفظان آمان یدخلوفی عمومه ما منذ که قبل لذالك تمام اونایی که قبل از این ذکر شدن لی ولی ولی من داخل مومن و لوالده ی من داخل اهل بیت مؤمنان داخل المؤمنون و مؤمنات هست ول از من حاذه زیاده یک تو شمول که چیزی از قلم نییفته وقتی للمؤمنان مؤمنین و للمؤمنات میعمل داخل میشه محل انایت بالخاص ولی یه نظر ویژن به خاص بوده فقط شمول رو نمیقازه چون اگه فقط شمول بوغ قصدش بود بعد همون عامه میاوم نه یه چیز دیگر هم میفهم. محل انایتو بخواست چرا لذکرهی مرغتین چون دو مرتبه ذکر شده به شکل تافتی جدا بافتی ذکر چرا دو مرتبه ذکر شده یه بار به طور سریع خاص ذکر شده لی و لباله یه بارم در ضمن آم ذکر شده توی للمومنین و المومنات اونا باز هستن لذکرهی مرغتن مرغتن او و مرغتن مندرجن آن داخلن تحت وطریق او به مثل سالس ان ایزاح بدل قام ایزاح بدل قام فر این قوله تعالی ان داب رها اولای مقتون مصفهین ایزاحن للاقام قلذی تزمر لفظ زالک الامر این ایزاحو بیان است برای اون ابهامی که تو زالک الامر هست یعنی اون قضیه رو ما بهش وه کردیم به طور سفت و سخت بعد میگه اون قضیه منظورینه که نسل اینا فرد و صبح مرخصه و زالی که لزیادت تقریر تسبیت المعنه بی ذهن سامه به ذکر هی این که دو مرتبه ذکر شده مردتاً علا طریق اجمال و ابهام یک بار به طریق اجمال و ها؟ و مردتاً علا طریق ایزاه و تفصیل ایزاه و تفصیل که اجمال و هم یکیه که من گفتم ذکر و شی مبهمان ثم مفصلا او قوا و عشتو فندوس خب تمام شد موزه چهارم موزه چهارم عبارت است از تکرار تکرار یعنی یه چیز رو تکرارش کنیم حالا ممکنه به قول خودمون تکراری که داری میکنیم یه قاعده دارن تو عربی یعنی تو بلاغت میگن کل ما کل ما یعنی کل الذی کل ما قرر قرر هر چیزی که تکرار بشه تثنیق پیدا میکنه پس تکرار یه فایده ای بگیرین بقول خودمون اصلی داره نرخ شاب عباسی یعنی اصلا 100% اون عبارت هست این که تکرار باعث تغییر میشه هر شروع شما تکرار کنید جا میفته تکرار فایدهش جا انداختن مطلب تکرار در واقع اضافه است که شما بار اول مطلب رو گفتید وقتی بار دوم میگی اونو دبلش میکنی. کلا صحفت علمون میاد بعد از کلا صحفت علمون دیگه. این نمحل اسریوس اصره اصرا. میاد بعد از این نمحل اسریوس. معنای جدیدی نمیاره بلکه همون رو تکرار میکنه جا میندازه که اگه طرف اولی رو نشنیده دومی رو صد درصد میشنوه اولی خوب نشنیده دومی رو بهتر میشنوه یعنی کاملا تو ذهنش جا میکنه خود ما میگیم یا تکرار کن تکرار میکنه یعنی تو ذهنم نشست ما تکرار میکنیم تا اینکه تو ذهن مخاطب بشن این فایده ی ای تکراری و یکی از موارد اتناب با شما ز خیلی از آیات، روایات، مطالب، کلماتی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم توش تکرار هست و این تکرار ها قاعدش اینه کل ما قردره، کل ما قردره، هر هرچی تکرار بشه چه افتیم تکرار نگاه کنید از تکرارو لدائن تکرار یه فایده کلی داره جا انداختن اما انگیزه هاش فرق میکنه ها اتکدارور به دائم برای انگیزش یک که تمکین المعنا من نفس مثل اینکه میخوایم معنا و مفهوم تو ذهن مخاطب آ نفس یا نفس مخاطب روح شنونده خوب جا بگیره میخوایم خوب تو ذهنش بشینه خدا میخواد خوب این مطلب تو ذهن ما بشینه که همراه با سختی آسایشه سختی نمیمونه آسایش رو به دنبال خودش میاره اینو میخواد تو ذهن بشونه یه بار گفته فعیل نمحل عصر یسرا بعد تکرار کرده این نمحل عصر یسرا <تصفيق> که یعنی جا انداختن مکان دادن معنا توانمند کردن معنا منن نفس یعنی نفس مقابل این یک اما آیا تکرار همیشه برای اینه؟ خب یه نفری مثلا فرض بفرمایید که این که تمکین المعنا من ان نفس میشه انما على اسلئوس را انما على اسلئوس. توی اوقات نه معنای اینطور نیست مثلا یه روز سر قبلو رو پسرش سرش نشاسته میگه پسر من عزیز من از دستم رفت از دستم رفت هی ای تکرار این تکرار کردن برای این نیست که تو نفس مخاطب بشی. این داره در واقع اظهار حسرتو خودشون می‌کنه. حسینم, حسینم وای حسینم وای حسینم وای تکرار میشه یا حسین یا حسین یا این، اظهار حسرت تکرار درست شد مثل چی و تحصد داره اینا هم اینا فایده های معنویه گاهی اوقات اظهار خوشحالی میکنه قبول شدم قبول شدم قبول شدم قبول شدم ها تکرار. درست شد اظهار سرورش باعث شده که این تکرار. نه خودمون میده اینا فایده های معنویه اما گاهی اوقات فایده لفظیه مثل این چ طول فصل فاصل یعنی فاصله چ طول یعنی فاصله یه مثال من بزنم دو, دو تا مثال اصلا می‌زنم چون مهمه تکرار در شد انگیزه هایی توشه یکیش معنا تو ذهن مخاطب جا بیفته یکیش اظهار تحصره اظهار سروره اینا مواردی که دیدیم فایدهای های معنوی که فایده لفظیه اصلا فایده معنوی نداره لفظ رو درست میکنه الان این آیه رو ببینیم ایعه بنویسید ایعه دکم انکم ازامه و کنتم ترابن و ازامن انکم مخرجون انکم مخرجون ایعیدو کم انکم و یعیدو کم ان لکم ازامتتم و کنتم ترابن و ازامن ان لکم مخرجون سوره مؤمنون سوره مؤمنون آیه سی و نگاه کنید ماده وعد یعدو دو مفعولیه درست شد شیاطین اینطوری میگفتن میگفتن اگر ای ادو کم یا ای ادو ذمیرش بخورد به رسول به آنبر خدا میگفتن آیا وعده می دهد این پیامبر کم به شما انکم اینکه شما مخرجون اون مخرجون خبر آن است این انکم مخرجون مفهوم دوم یعدوس ای ای یعنی آیا این داره بهتون وعده میده یعنی تعجبه این داره بهتون وعده میده شما زنده میشید که ازاکنتم تراغن و ازامن وقتی که مردید و خاک شدید و استخون شدید گوشت و پیو دنبه شما خاک شد استخوناتون هم باقی موند شما فکر میکنید بعد از اون زنده میشید این به شما گفته شما زنده میشید درست شد این ازا کنتم ترابن و عزامن این این وسط جمله معترض است درست شد این کونتم ترابن و عزامن مت و کونتم ترابن و هم به غرینه ایه دوکم از شده این جمله جمله معترض است درست شد این در واقع جمله معترض است حالا نگاه کنید مطلب ساده ای را فدمت شما عرض میکنم. شما دیدید که آیا ایدو یعنی تحجبه که این داره به شما وعده میده که شما زنده میشید درست شد؟ تکرار میکنم حالا که فهمیدی سوره مامنون آیه 35 دیگه ای ایدو کم انکم ازامتون و کنتون ترابن و ازامن انکم مخرجون گفتیم اون کم مفعول اوله زمیر هو توی تو یعدکم یه انکم مخرجون تحویل به مستر میره مفعول دومه. درست شد. مخرجون خبر است. ولی بین ان و و اسم و خبرش فاصله افتاده فاصله چیه ازا کنتم تراب ازا متتم و کنتم ترادن و ازامه برای خاطر اینکه معلوم بشه مخرجون خبر انکم هستش آ، دوباره انکم رو چیکارش کرده بگید تکرار کرده گفته ازا متم و کنتم ترابن و ازامن انکم مخرجون یه انکم تکرار و انکم قبله فقط و فقط برای این آورده شده که شما بفهمید این مخرجون بگو خبر انکم اوله و این جمله ازامتم و کنتم ترابن و ازامن این وسط اومده جمله معترضه از فاصله کرده درست شد؟ خاصه زودتر بگه زمانی که شما مردید و خاک شدید و استخان آیا شما زنده میشید؟ فایدش فقط فایدش, فایدش طول فصله یعنی برای اینکه این مطلب معلوم بشه درست شد؟ پس بنابراین پس بنابر این این مبحث رو شما دارید درست شد؟ خب آیه رو که مثال زدم براتون شما هم دیدید این موضوع رو تکرار هم کردیم. این رو میگن این تکراره حالا یه مثال دیگه بزنم یه مثال بزنم ولی مثال دیگه بزنم سوره یوسف رو نگاه کنید اول سوره میگه یوسف گفتش که یا ابته یا ابدی انشاءی تو آهده آشره کوک کنم. اکثرتون رو دیدید. انشاءی تو آهده آشره کوک والشمس و شمس و القمر رعایت هم لی ساجدی. از غال یوسفه اول یوسف از غال یوسف و زمانی که یوسف به پدرش گفت یا عبته ای بابا اینی رعی تو احد اشر کوکبن و شمس و الغمر رعی تو هم لی ساجدین رعی تو هم لی ساجدین الان نگاه کنید او ساجدین مفعول دوم رعی توی بعد از اینیه اینی رعی تو احد اشر کوکبن و شمس و الغمر لی ساجدین این متعلق و ساجدین ما خبر دومه یعنی من در خواب دیدم یازده تا ستاره و ماه و خورشید این ماه و خرشید دارن به من سجده میکنم اینو تو خواب دیدم بعد برای خاطر اینکه معلومه چون مفعول اول دراز شده اهده شرکو کبن و شمس و غمر مفعول اول دراز شده ماسه مفعول دوم ساجدین رو بیاره اون رعی توهم رو برابار دوم چکار کرده؟ تکرار اون رئیتمون در واقع تکرار این رئیت و احد عشرکون که با وشمس برابر که بگه این ساجدین مفعول دوم رئیت است درست اینم اینم مثال دوم دو تا مثال ذکر کردیم درست یکی سوره مؤمنون آیه 35 که ان تکرار شده تا بگه مخرجون خبر عنه توی مثال دوم سوره یوسف ارز کردیم که رأیتهم تکرار شده قبل از لیساجدین تا بگه لیساجدین مفقول دوم رعی توی اوله چون فاصله افتاده بوده طول فاصله شده بود درست شد؟ مثل که شما میگید زید بعد میگید رفته بودم بازار این کارو میکردم و اون کارو میکردم یه چیزی میگی؟ بعد اون زیدی که اول گفتی میگه دیدمش خب این میکنه که این دیدمش ارتباط میگه زیدو دیدمش دوباره زیدو چه کار میکنیم؟ تکرار کنیم حالا نگاه کنید کتول الفصل حالا خود کتاب هم مثال زده مثال کتاب رو نگاه کنید من مثال کتاب رو برای شما بخونم اول مثال چارم رو ببینید قال انتر تو تو و قال انتره توبنو فی بعض روایات معلقتی در بعضی از روایات معلقش اینطور گفته این شجاع بوده به شجاعتشان می نازیده گفته یدعون انتره یدعون یعنی منادونه ندا می کردن. صدا می کردن. ما در از این دوتا شعر در مقام فخره افتخار پوزه میگه گه یدعون انتره یعنی یا انتره میگه همه داد میزدن انتره انتره صدا کرده و رماهو که انه های است و حال آنکه نیزه های دشمن که انه انگار این نیزه ها اشتان و به ارن یک چاه بود فی لبان الادهمی در سینه الادهم است به من میگه این نیزه اینطوری می آمدن و می رفتن می و می توی سینه عصب من این گودی سینه عصب من عصب سیاهی داشته حد هم حد هم اسم عصب سیاهاشی که من زوار بودم اینا این نیزه رو که می آوردن و می بردن انگار که یک نفر سر چاه وایستده فاان می بینه که یه تعدادی آدم روی رو می تو چاه که آب بکشن یکی می کشه بالا یکی می فرسته با یک یه ریسمان ها که توی چاه بالا پایین میره میگه شبیه هست به اون این میزه هایی که به خب الله که بعد شد بعد شد دوباره تلاش کردیم و شد خب درست شد میگه که خلاصه این افراد سر و صدا میکردن انطر انتر من رو صدا میکردن در حالی که این نزه های دشمن در سینه اسب من فرو می مثل در رفت آمد بود مثل تناب هایی که دونون چاه می ره سیاه اون گودی جلوی سینهش این نیزه ها به طرفش می آمده و می رفته این رو کرده به چاهی که تناب ها به داخلش انداخته شده یکی بالا می کشه یکی پای خب اینو گفت ور ماه و به شما به پانیگست ید اون انتره باز میگه ید اونه انتره وستویوفو میتونست بگه وستویوفو که انها کنه به جای ها که انها ولی ید اونه انتره رو دوباره تکرار کرد داد میزدن انتره انتره وستویوفو که انها در حالی که شمشیرهای دشمن گویا یا لمع البوارق گویا یا درخشش رد و برق و آسمان است این صحاب مظلمی در ابر تاریک عبر تاریخ منظور اون گرد و خاک میدان جنگ بوده که بوده این شمشیرها برغ میزده تو اون گرد و خاک برون پایین میرفته تشبیه کرده به رعد و برقی که توی آسمان سیاه اتفاق بفت میگه همه داد میزدند انتره انتره توی شرایط اینطور جنگ تنبتن در حالی که شمشیر دشمنان بالا و پایین میرفت و میدرخشید این شمشیرها درست شد گویا رد و برق بود گویا برق آسمان بود در ابر تاریک این شمشیر در اون گرد و قبار تاریک میدان جنگ تشبیه کرده به رد و برقی که در آسمان در ابر سیاه زده بشه که انه ها یعنی که انه سیوف لمع البوارق گویا درخشش برق آسمان بود برق ها بود ساهقه های آسمانی بود در ابری تاریک خب نگاه کنید دیگه این ید اونه انتر انترن واسه چی دکتا کرد؟ آنچون در مقام فخر بوده میخواست این رو تو ذهن بشونه اینو تو ذهن بشونه همه قبول کنن مردم اون. لشکر همه داد میزدن انتر انتر همه میگفتن انتر انتره این می‌خواد تو ذهن من و شما بشونه که همه محتاجش بودن و این مطلب رو میگفتن پایین نگاه کنید از جبرئیل جبریل علیه السلام عشتان بر کباله و ریسمان هاش و لبان العدهم لبان صدر العدهم هم عصب سیاه هست. نام هم عصبه درست شد بیان کرد حالا نگاه کنید تو مطمی و طریقه هفل مثال سالسه علی ایزاه بعد رفا فعن نقوله تالا درست شد ندا بر آخه اولای معطوان مسخین ایزاه دل لفظ دل قامد کل و زالی زیادت تقریر تسمیت المانه فی ذهن سامه به ذکری مرتایند به ذکری مرتاین مرت نادرتاریق الهسان و وربام و مرت طریق و تفسیت توضیح داریم و طریق هو فی بی تی فی بی انتره تا در دو بیت انتره شیوش اینه تکرارو طریقش تکراره لتغییر تغییر این نفس سامه چون مخواست این معنا و مفهوم که به من همه محتاج بودن در مقام فخر بوده اینو به قول خودمون تو بشونه درست شد لتغییر المعنه این نفس سامه و تسمی تهیم تغییر المعنه و تصمیم تطفیه و ی از هروه آزالغرز فلخطابت این در خطابه پیدا میشه داره خطابه میخونه موضوع خطابه رو اتکرار میکنه داره خطابه در رابطه با کمک و ایتام میگه توش تکرار که کمک و ایتام کنید زیاد یا داره فخر میکنه این من من من توش زیاده درست شد؟ و فیموتن فی الفخره و المدهه و الهرشاده و الانذاره داره یه نفر مثلا انذار میده از این که با دوست ناباب بشینه هی hey, این مطلب رو تکرار میکنه داره ارشاد میکنه که درس بخونه هی hey, این تکرار میشه اینا مقام تکراره برای اینکه مطلب شده در مد و فخر و ارشاد و انزار و اینها و قد یک اونها تکراره لدواه نخ رو گاهی اوقات انگیزه تکرار انگیزه معنوی نیست لفظیه منها هم باز معنویه ولی دیگه به خودمون عظیم رو نیست منها التحسر کما فی قول الحسین بن مطیر مثل قول حسین بن مطیر یرسی معن ابن که داشته این آقا رو بقول خودمون مرسیه میکرد اون میگه فیا قبر معن اینو خوندیم ها. فیا قبر معن تو بحث ندا خوندیم چقد من گفتم درست شد اون تو بیت دوم بیت دومش بود و یا قبر معنن کیفه وارع تجوده بود این گفتیم که استقام برا تحجیب یا قبر معنن گفتیم یا برده برای ندای بعید به خاطر میواسه تعظیم قبر رو کنه و اگه یادتون باشه گفتیم که قصدش نبوده که قبر معن ابن زایده بگه بله بده. قرضش از این ندا به قول خودمون اقبال منادا نیست این رو خوندیم میگه فیا اما اینجا این بیتارو داریم برای چیز دیگه میخونیم میگه فیا قبر معنل اونجا گفتیم اظهار تحسره فیا قبر معنل آهی قبر معن ابن زاید ای قبر شری انت و فتن تو اولین گودالی هستی که این صفاتو داره من الارض در این کره زمین هست تو اولین گودال در این زمین هستی که خودت لس سماحت موزه تو اولین گودانی در این زمین هستی که نشانگذاری شده کنده شده آه خود ل لسماحت برای جود به عنوان موزه تو اولین گودانی هستی در این کره خاکی که برای جود کنده شده یعنی نشان جود برش گذاشته شده تابلوی جود داره آه یعنی او ی ی سماحت موزهن مشخص شده برای جود و به عنوان تابلوی جود روی اولین گودالی که زده شده تو هست تو گودالی هستی که سابقترین و بالاترین و اولین گودالی هستی که نشان جود و تابلوی جود روی او زده شد خود تتل سماحت موزهن یعنی اتطوخ زد بود نتل سماحت موزهن ولکرم و جود یعنی او ی آ گرفته شده از عنوان محل جود او توخذ از متکون گرفته شده تا محلی باشد برای کرم و جود یعنی او نند لسماحت موزهن. به عنوان موضع برای جود و سماحت و یا قبر معن باز میگه و یا قبر معن ای قبر معن ابن کیف واری تجود او آخه تو چطوری تونستی جود این آقای معن ابن زیدره رو تو خودت جمع کنی تو چطور تونستی همه این جود رو در خودت جمع کنی ای قبر این وا واهالی است ود کان من البر رو و البحر و مطرعا و خشکی و دریا از جود او مملو بود پر بود مطرع یعنی مملو با همزه یعنی پر پر شده بود در زمان خودش تمام خشکی و دریا از جوده او تو چطور تونستی همه این منبع جود رو در خود جمع کنی من تعجب می ای قبر معن ابن و یا قبر معن کیف و ایت جوده حالا این و یا قبره و یا قبره و یا قبره, ویا قبره تکرار شده برای چی برای سال تحسس یعنی واشون میگه آها یا قبر معن ابن زاهد ای قبر معن ابن زاهد داره با حسرت میگه آه ها طول الفس اما این دیگه غرض نفسیه طول الفس کمافی فی قوله من برای طول الفس دو تا آیه مثال این یکی دیگر داره شعر میده نگاه میگه لقد علم الحي یمانون هی یعنی قبیله یمانون یعنی یمنی ها میگه قبایل یمن خب لقد علم لقد هم جواب قسم یعنی والله لقد میگه به خدا قسم یقین کردن توائف یمن چرا یقین کردن؟ اننی یه اننی درست شد با اسم و خبرش صد مسد دوتا مفعول علم است قبائل یمنی یقین کردند که چی؟ اننی خطیبه ها من خطیبه ها خبرش. همه قبائل یمن می دانن باور دارن یقین دارن که من خطیبه اونها هستم سخنران منم سخنگو منم چی ازاغلت و اما بعد یا سخنران ها وقتی شروع می کردن مثل ما که میگه بسم الله الرحمن الرحیم ملحم دلالله رب العالمین از سلاط و وسلم میفهمند در اومد صحبت کنه این سخنران ها قبل از اسلام شروع که می کردن اما بعد و این الامور اینطوری میگه این اما بعد رو هر کی میشنوه میفهمه من دارم سخنرانی می‌کنم چون کسی غیر از من جرأت اما بعد گفتن و صحبت کردن مثل این که بگیم بسم الله رو که میشنوه میفهمه من رفتم بالا منبر خب این اننی خطیب ها خطیب اون حیه یمانون قواعد فا میخوره به الحی چون به بعد قواعد یمانون صفاتشه یعنی یمنی ها و خب؟ اندنی خطیبه ها حالا چرا اون اندنی دوباره تکنار شده؟ برای خاطر که بگه این خطیبه ها خبر است؟ ولی هیچ فایده لفظی معنوی نداره هیچ درست شد و بگه که این ازاغلتو اما بعد معترض است بین اسم انده و خبر انده چکار کرده فاصله کرده جمله معترض است شد لقد علمالحیل یمانون و هننی ازا تا و اما بعد انی خطی بها علی یمانون المنصوبون الال یمن خاشیه یکیشم میگه شاهران آشف دولتین علمویت والعباسیه شاهر ایست که هم در دوله هم در دوره عمویین بوده هم عباسیه و لهو مفا و لهو مدائه و فی رجاله مدهایی داره در بزرگان این دوتا تاریفه عموی و عباسی و کانم اهل احسن احل زیان و کلامن و از زیباترین اهل بادیه بادیه نشینان بوده از جهت زی زی یعنی حیعت شکل قیافه و از جهت سخن از جهت ظاهر و سخن از همه بادیه نشینان زیباتر بود توفت دیستن از نعتن و تسن و ستین هجریت هم بعد مهند درست شد این در واقع تو این سال 169 از دنیا رفته بعد معن ابن زایده و لحور از آغان فی ها بعد از معن ابن زایده معن زایده در دنیا رفته و برای این آقای معن ابن زایده هم مرثیه‌های خوب اینا خب معلومه دیگه واسه برای, برای اون مرثیه داره بعدش رو بعداً می‌رافت اینطوری بوده و تو بوت بی اسنت و تس ان و ستین هجریتاً بعد معن ابن زایده یعنی بعد وفات معن ابن زاهده و له رسامون فیها اینم دید میریم سر موضع بعدی موضع بعدی خوب گوش کنید اعتراض است جمله معترضه الان من چند تا رو گفتم که جمله معترضه داشت. جمله معترضه عبارت است از جمله ای که بین دو جزعه کلام میاد جمله معترضه عبارت است از ای که بین دو جزء یک کلام میاد دو جزء یک کلام مثل مبتدا و خبر مثل صفت و موصوف درست شد نه بین دو جزء یک کلام مثل مثلا فاعل و مفعول وسط دو جزء یک کلام میاد این جمله محلی از اعراب نداره یا بین دو تا جمله دو تا کلام میاد نه بین دو جزئه کلام بین, بکر بین دو تا جمله یا بین دو تا کلام میاد درست شد که اینها به هم متصلند مثل فعل شرط و جواب شرفت. مثل قسم و جوابش جمله قسم و جمله جوابش بین اینها میاد بین دو کلام مطابق به خودمون به هم متصل دو جمله به هم متصل یه جمله‌ای میاد که محلی از اعراب نداره مثلا این جمله شرط اینم جمله جوابشه وسطشون یه جمله معترضه بود یا بین دو جزء یک کلام میاد بین مبتدا خبر یا بین صفت و موصوف فاعل و مفعول میاد یه جمله فاصله جمله معترضه یک خصوصیت بیشتر نداره. الاثراء یعنی شتاب کردن. الاثراء الا سه نقطه. اون سه نقطه فرق میکنه خب این خب باز دوباره قطع شد دوباره وصل شد توجه کنید درست شد الان اومد صدا انشاءالله که دیگه قدر نشد خب پس این ما جمله معترضه رو میاریم برای عجله و شتاب در یک مطلبی که تو ذهنمونه. که نمیذاریم جمله کامل بشه و اونو بگیم اونو وسط جا میدیم جمله ما محل اعرابی هم شرطش اینه که محل اعرابی نداشته باشه این جمله مثلا جمله حالیه نباشه جمله وصفیه نباشه یه جمله که هیچ محل اعرابی بگید ندارد این شرطش اینه. گفتیم وقت قصد و قرض هم بگید چیه علی اسرائیلا حالا اون الار دیگه شما باید عجله کردن شتاب کردن به سوی اون به سویه برای تقدیس و تنظیب برای دعا کردن برای پوز دادن برای هر چیزی یه چیزی قصد و قرص شده ما رو مجبور کرده که این جمله رو اون وسط قرار بدیم درست شد؟ یک قیدش اینه که محل اعرابی نداشته باشه قید دومش اینه که این جمله برای رفع ابهام آورده نشده باشه این جمله برای رفع ابهام آورده نشده باشه چون اگه برای رفع ابهام باشه میشه اون آخری که میگیم احتراس درست شد چون گاهی اوقات جمله میشه و برای رفع ابهام درست شد یک محل اراده نداشته باشد دو برای رفع ابهام آورده نشده میشه نخواد ابهام زدایی کنه قصد و غلط چیز دیگه میشه. حالا نگاه کنید خودشون توضیح کنید من که خیلی گفتم علی اعتراض و هوه ان یعطا فی اصنای کلام در اصنای کلام در لابلای اجزای کلام او بین کلامین متصلین یا بین دو کلام متصل قسم یکی جواب است. یکی شرط یکی جواب او بین کلامین متصلین متصله این در معنو با ان یعطا به جملته این به جملته متعلق یعطاست این اینکه آورده بشه جمله ای. او اکثر ممکنه جمله معترضه دوتا جمله باشه من دیدید که گفتم قال الله سبحانه و تعالی سبحانه و یه جمله است و تعالی یه جمله است دوتا جمله تو دومی گفتم قال علیه یا علیه السلام بیاد نه بود به جملت نو اکثر شرطش اینه لا محل لها من الاعراب این لا محل لها من الاعراب صفت جمله جمله ای که اومده جمله مرتذله شرطش اینه که محلی از اعراب نداره شو اگه محل اعرابی داشت اون شو جمله حالیه که محلا منصوب جمله وصفیه که به اعتبار موصوفش اعراب داده میشه این دیگه جمله معترضه نیست او خب. یه شرط دیگه هم داشت شرطش این بود که برای رفعه ها ماورده نشده باشه پایی هاشیه نگاه کنیم و یجب و انیکون للبلیغ به اعتراضه خر از اون واجب است برای شخص بلیغ در این که در اعتراض جمله معترضه میاره قرز داشته باشه که من گفتم قرزش اسراء الا بود الا ستا نقطه اون ستا نختر رو شما بزر زبارت بفرد علی از قرازون یرمی علیه قرازی دارد که به طرفش میره یخصده یرمی علی یعنی یخصده بستشون میکن غیر دفعه ایهام به شرط اینکه دفعه ایبخام و ایهام نباشه چون اگه دفعه ایبخام و ایهام باشه میره تو اون قسمت زه که میخونیم آخری احتراس فعن کانال قرازون دفع او پایان کانال قرارداد و, کان و علی ایهام کان احتراسازی را اگر در از دفعی قام باشه این میره داخل در احتراس جمله معترضه نگاه کنید جمله معترزه رو توی عبارت کتابتون قالن نابغه تو آقای نابغه گفته الجعدی نابغه زبیانی داریم و نابغه جهدی این نابغه جهدی است نابغی زبیانی زو... از شعرهای بزرگ جاهلیست نابغه جهدی خبه هستان ابن قیس جدی شاعرون تدیمون معمرون درست شد با عمر طولانی عدرکت جاهلیت و الاسلام هم اون ولی نابغی زبیانی اسلام رو درک نکرد در جاهلیت ما از جاهلیت و الاسلام این جزه مخزرمینه اون جز جاهلیگینه و اصلمه و حسنه اسلامهو مسلمان شد اسلامش هم خوب شد و انشدن نبی صلی الله علیه و علیه و سلم به برای نبی گرامی اسلام شعر گفت یعنی در مقابل شعر خوند و پیامبرم اوجبه بهی. خیلی خوشش اومد و قال لهو لا یفززل لا حفاک رسول خدا او رو دعا کرد که لا یفززل لا حفاک خدا دهانتو نشکنه آه یعنی لا نشی. یعنی همیشه زبانت گویا باشه خب ببینیم چی گفت میگه زعمت آهای مردم زعمت یعنی ادت ادعا کرده گمان کرد زعمت بنو سعد بنو سعد یعنی تایفه بنی سعد ادعا کردن تایفه بنی سعد چی ادعا کردن؟ چی گمان کردن؟ به انی کبیر و سنه فانی کبیر و سن خبر اول آن نیست فانی خبر دوم میگه آهای مردم طائفه بنی سعد گمان کردن من سنم زیاده کبیر و سن من عمرم زیاده فانی مردنی هستم میگه این بنی سعد گفتم بابا این که خیلی ممکنه درست شد اندازه کلاقم کرد خیلی عمر کرد فانی مردنیه میگه اینو گمانگن قبل از اینکه که کبیر و فانی بیاد گفته علا بود آهای مردم حواستون باشه دروغ گفتن یه علا چذبو رو اون وسط واسی آورده قبل از اینکه بگه اونا چی گفتن مثل اینکه میگه فلانی رفته پشت سر من دروغ گفتهها دروغ من از مردم پول گرفت این قبلش با قول خودمون اینو میگه دروغ گفته ها دروغ اینو میگه که من با دایی موقعی بگه که فلانی رفته پشت سر من گفته من از مردم پول گرفتم اینو مردم بشنه دیگه اون دروغ گفته دروغ گفته هرچی بگم نشنه قبلش اینو گفته که با قول خودمون اینو جا مندازه که دروغ گفتن حواستون باشه این جمله معترض است علاکزه آهای حواستون باشه دروغ گفتن آه. یه موقع میگم باور نکنید شما راست کبیر و سنه فانی اومده بین اسم نه به و خبرش چی کرده این جمله علاکزه کذبو فاصله کرده نگاه کنید میگه توی متن و طریقه فیلم سال خامسه علیه تراز و هوان یو اطافی اصنای کلام این که آورده بشه در اصنای کلام او بین کلامین متصله این, این یا بین دو کلامی که در معنا با هم متصله مثل قسم و جوابش مثل شرط و جواب جوابشرد به جملتن آورده بشه یه جمله او اکثره لا محل له من را که محلی از اعراب نداره دفعه ها هم مقصود نیست نه از این قصد ویل این ولی این جمله رو میارم وسط جسازی میکنه محل اعرابی هم نداره برای قرضی که خودش نظر داره درویشو قرزش اینه که دروغگوی اونا زودتر تر بیان کنه قرزش اینه دعا کنه قرزش اینه تقدیس و کنه اقراض یکی در نقر از این یخصدو الهی و اله جمله تو علاک زبو قجاعت بی بیت نابغته میگه جمعه علاک زبو آمده در بیت نابغه بین اسم اله و خبرها بین اسم اله و خبرها چرا؟ لیل اسرائیلا این لیل اسرائیلا هست حالا اینجا اون تا نقطه اینه لیل اسرائیلا از تنبیه علاکز من رماه و بلکبه. برای که به مخاطب تنبیه کنه، هشدار اعلان کنه، مخاطب و حشیار کنه بعد دروغ بودن اون رماهو یعنی اتهم بعد دروغ بودن آنچه که متهم کرده او رو به این که عبارت هست از پیری برای اون که اون حشیار بشه برای اینکه اون که به او تهمت زده دروغه اینو زود آورده جلو بود و قد یکونو به نوراز اعتراض الاسرائیلت تنزیح مثل که میگه قال الله سبحانه و تعالی قد افله المونه تنزیح گاهی اوقات دعاست حالا تنظیم مثال زده ان الله تبارک و تعالی تبارک و تعالی دوتا جمعه محترس است لطیفون به عباده اینه الان لطیفون خبر این نست ولی بین این دوتا قصدش این بوده که زودتر خدا رو تقدیس و تنزیح وقت یکونه لدعا گای اوقات برای دعا ساله دعای لح یا دعای علی نهو اینی وقاک الله مریض من خدا تو رو حفظ کنه من این بیمارم این وسط قبل از اینکه بگه من بیمارم دعا در حق مقاتب کرده وقاک الله خدا تو رو از من از حفظ کنیم خود تو تو سالم ده این هم جمله معترزه اما بعدی بعدی رو خوب توجه کنیم خوب. عبارت هست از تزییل تزیل یعنی دنبال دادن به کلام اصلا زیل یعنی هاشیه داد به سخن هاشیه داد زیل یعنی اصلا حاشیه. این تزییل چیه؟ شما حرفتون رو میزنید تموم میشه خب؟ بعد از اینکه حرفتون رو زدید تموم شد خب؟ یه جمله میارید. خب. این جمله دوم مشتمل بر همون معنای جمله اوله، چیز جدیدی نمیگه. مشتمل بر معنای همون جمله اوله، نه لفظشا، همون معنای جمله اولو تکمیل میکنه. و تاکید اونم هست. یعنی در واقع وقتی همون معنا رو میرسونه تحکید. درست درستو. و این دو نوعه. دو نوعه یه نوعش مستقله این جمله این جمله مستقله یعنی شما هر کجا ببرید ما قبل و ما بعدش هم نباشه همون معنای خودش رو میده یه معنا بیشتر نداره اینجا اومده بعد از این جمله قبلی معنای جمله قبلی رو میده و اونو تاکید میکنه ولی خودش به تنهایی هر کجا بیاد هر کی بشنوه یه معنا بیشتر ازش نمیفهمه معناش وابسته به کلام قبل بگید نیست این میگن تضییل جاری مجرای مسل یعنی مثل زرب المسل خودش مستقله یه معنا و مفهومی برای خودش داره اما یه نوع دوم داره که این بعد از یه جمله میاد تأکید اون جمله رو میکنه معنای اون جمله رو به قول خودمون مشتمله تأکید معنایه برای اون ولی مستقل نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی با اون قبلیه بیاد معنای اون قبلی رو داره و غیر ولی اگر قطعش کنی اون قبلی رو نگی خود این جمله رو به یه نفر بگیم ممکنه یه معنای دیگه ای برداشت معناش اصلا اینی که شما میفهمی الان با واسطه جمله قبل نیست اینو بهش میگن غیر جاری مجرای مسأله مستقل نیست پس در اینجا ما دو تا جمله داریم یه جمله قبل اومده یه جمله بعد این جمله بعد مشتمل از نظر معنا بر جمله قبل تأکید اونم هست دو نوعه بنای اوقات این جمله دوم به طور مستقل اگه جایی گفته بشه یه معنا بیشتر نداره همون معنای خودشون میرسونه. چه اون جمله قبلی باشه چه نباشه این یه معنا بیشتر نداره. اینو میگن تزییل جاری مجرای مثل یه موقع هست نه این جمله دوم بگو. تاکید جمله اول معنای جمله اول رو میرسونه مشتمل بر معنای اوست. اما به شرط اینکه با جمله اول با هم بیاد به شرط این که با جمله اول بگو با هم بیاد اگر با جمله اول با هم نیاد ممکنه که اون جمله دوم یه معنای دیگری ازش فهمیده نیده شد درست شد حالا نگاه کنید تزیل رو از تزیل و حوض تعقیب اون به دنبال آوردن جمله جمله اول به جملت نخرا به یک جمله دیگه یک جمله دیگه بعدش تشتمل الان معناه این جمله دوم، مشتمل بر معنای جمله اوله توکیدن لها تأکیده برای اونست به جهت تأکید رو آوردش مشتمل بر معنایونه اونه قصد و هم تأکید اون جمله اوله و هوه قسمان دو قسمه جارن مجرل مثل یکیش جاری مجره هایی مثله ان استقل ان استقل معنا ها اگر این جمله دوم معناش مستقل باشه این کلام دوم معناش مستقل باشه و استقلا هم با قبله و در رسوندن معنا وابسته به ماقبلش نیست مستقل از ماقبلش. قبلش دو جارن مجرن یک جار مجرل مثل ان استقل معنا معنای کلام دوم مستقل و ثغن ماقبل دومین غیر جوار مجرالمثل ان لم یستغن ما قبله اگر مستقنی از ما قبلش نباشه و با واسطه ما قبل معنا و مفهوم فهمیده بشه دو تا مثال میزنیم دیگه مثال هایی که تو کتاب هست شما الان متوجه میشید بعد تو نمونه هم باز مثال داریم بهتون میفهمونیم شما هم دیگه تعریفشو رو فهمیدید الان خودتون هم تو فارسی میبینید مثل این رو به کار یکیش مثال ششون ملاقای حتیعه میگه به خودش خطاب میکنه میگه آقای حتیعه برو پیش فلانی تزور و فتن اگر بری ملاقات خواهی که از جبان مردی رو تزور و فتن یعتی علال حمده مالهو یعتی همده حمده مالهو مطا می کند برو پیش فلانی می دهد علال همد بر حمد و ستایشی که ازش بشه مال هم. مال خودش یعنی برو پیش فلانی مطش بکن در مقابل مد سله میده. این آدم کریمیه آدم بزرگیه کسی اگر در مقابلش برود و حمد او را بکند او را دست خالی بر نمی گردونه. برو پیش فلانی مده او رو کن او در مقابل مد سله خواهد یعطی علال حمده ماله بعد پشتش میگه و من یعط اسمان المهامده یخمدی و هر کسی بدهد قیمت حمد و ستایش رو هر کی پول برای حمد و ستایش قرد کنه یخمدی مورد حمدم واقعش. واقع میشه آه یه همون معنا رو میده یعنی این پول سنا رو میده هم میکنه همون معنا و مفهوم رو میده اما این جمله و من یو ات اسمان ال مهامده یومدی هر کی پول حمد و رو بده هر کسی سنه و عطا و کرم داشته باشه مردم هم دوستش دارن و همدش میکنن اینو هر کجا این جمله رو بذاری به یه نفر بگیم معناش چیه همه عالم همین یه معنا رو ازش میفهمن درست بعد از اون جمله اول اومده داره اونو تاکید میکنه. مشتمل بر اون معناست ولی خودش به تنهایی مستقله. خودش به تنهایی چیه؟ مستقل. ده. اینو بهش میگم تزیین جاری مزرعه است. مثل. مثل این نگه میگه فلانی یه پول کلونی داده یه ماشین خوبی خرید. میگه آها چقدر پول بدی همونقدر آش می های جمله که آورده داره تأکید همون کلام قبله میخونه یعنی اون پول خوبی داده آشه خوبی هم خورده درست شد؟ حالا این هر کجا این جمله گفته بشه هر که پول خوبی بده آشه خوبی میخوره یعنی هر کجا بیاد یه معنا داره, داره, داره. درست شد؟ این میگن میگرد و من یعطه اسمان محامده یحمدی هر که سمنهای که سمن هم دو پرداخت کنه یغمدی مورد همد واقع میشه و من یعت اسمان از یغمدی یحمد حالا دومیش نگاه کنید میگه قال ابن نباتت از سعدی آقای ابن نباطه سعدی گفته یکی رو داره مطمی میکنه میگه که لم یبقه جود و کلی شیئاً او عملو باقی نگذاشته است جود تو کرم تو لی برای من شیئاً چیزی رو که این صفاتو داشته باشه او عملو آرزوش رو بکنم آقا جود و کرم تو چیزی نگذاشته که من آرزو و درخواستش رو بکنم جود و کرمتو تو چیزی دیگه باقی نذاشته که من بخوام ماشین بخوام جود و کرمت داده خونه بخوام داده هر چی که من پول بخوام داده لباس بخوام داده غذا بخوام داده جود و کرم تو همه آرزوهای منو برآورده چیزی باقی نگذاشته که من آرزو کنم یعنی جود و کرم تو همه های منو برآورده کرده تو این جمله اول لم یبق جودو کلی شیئا اوعملا بعد پشتش میگه ترک تنی ترک تنی یا یعنی جعل تنی دو مفعولی به من جعل است ترک یعنی جعل تنی قرار تنی ضرر دادی تو مرا اصحاب الدنیا معاشرت میکنم با دنیا یعنی هم مردم دنیا دنیا گفته به اهل دنیا بازه. من با مردم دنیا رفت آمد میکنم جوری منو قرار دادی با مردم دنیا رفت آمد میکنم عملن. در حالی که هیچ آرزوید به دلم نیست هیچ آرزوی ندارم چرا؟ این تأکید تاکید قبل دیگه تو منو کاری کردی که من با مردم سلام علیک میکنم رفت آمد میکنم هیچ آرزویم هم از اونها ندارم هیچ چشم داشتیم بهشون ندارم. این جمله مفهوم جمله قبل تاکید میکنه مشتمل بر همون معناست ولی این جاری مجرای مثل نیست چرا جاری مجرای مثل نیست؟ به دلیل اینکه این الان داره بعد از اون جمله اومده معنای اونو تأکید میکنه و بیان میکنه به معنا و مفهوم اونه ولی اگر به تنهایی بیاد ممکنه معناش این نباشه یه نفر به یکی بگه ترکتنی از خب دنیا بلا عمله قرار دادی من رو که با مردم دنیا نشست و برخواست میکنم بدون اینکه آرزویی داشته باشم بدون اینکه امیدی داشته باشم خب اگر این به تنهایی بیاد ممکنه یعنی چی؟ یعنی انقدر بلا به سرم آوردی انقدر بر من فشار آوردی انقدر کاری کردی که دنیا جلو چشم تیره اتار شده با هر کی سلام علیکم میکنم اصلا حال ندارم هیچ آرزو و هیچ خواسته ای توی دنیا سیره و مردم سلام علیک میکنم بدون اینکه چشمی به کسی داشت باشه. در معنا مفهوم مفهوم اون طور میشه. ممکنه اون طور بعد منفی بشه. اما وقتی پشت اون میاد معنا مفهوم همونو تأکید میکنه با اون تفسیر میشه. اینو میگن غیر جاری مشغله. ولی اگر اون جمله غام نباشه یه نفر بگه آقا این ترک دنیا از خاب دنیا بلا عمل این یعنی چی؟ میگه بابا یعنی اینکه پدرم در اومده. با مردم دنیا نشست و برخواست میکنم بدون اینکه اصلاً اصلا چشم امیدی به اونها داشته میگن غیر جاری مجموعی مثلا درست شد نگاه کنیم میگه وطریقه فلم سالین از و سابه در دو مثال هفته و هشته اد و هوه تحقیب جمعه به جمله نخران تعقیب جمله به جمله دیگر است تشتمل و علا معناها توکیدن لها که مشتمل بر معنای قبله و به جهت تحکید اونا بود فا اینل فی کلل بیتن زیرا معنا در هر دو به قد تمت به شکر الابر. در نیمه اول مصره اول معنا مفهومی که مقصودش بوده برده شده تموم شده سمه زیلن بعد دنباله آورده شده به شطر ثانی با جمله دوم لات توجیت برای تأکیدش. و از تعممل تزیل افیلم مثالی اگر تزیل رو در این دو مثال دقت کنی و جکت بینهمو بعض الخلاف خلاف یه ذره اینا با همدیه اختلاف دارد دومی غیر جاری مجله مثال اولی جاری مجله مثال. و حال که اند تزیل فیلم مثال اوله مستقر لندن هم. اون جمله تزیلی در مورد اول مستقل به معناشه لا یتوقف فهمه ولا فهم ما قبله. مستقل یعنی اینکه که معناش متوقف بر فهم ماقبل نیست ما قبلش هم نباشه همون معنا رو میفهمه یه معنا بیشتر نداره و یقال لهو ان لهو مثل این جاری مجرمسل یعنی مثل زرگل مسل میبونه خودش یه معنایی داره همون معنا رو میگه مستقل و اما فلم سالستانی و غیر مستقل دن معنا مستقل در معنا نیست اظلا یوف هم و القرض و منحه به معاونت ما قبل زیرا قرض و مفهوم فهمیده نمیشه مگر به کمک جمله قبل یعنی جمله قبل اینو معنا رو میرسونه و جمله قبل نباشه ممکنه معنای دیگه برسونه و یقال لها نه انه غیر جار مجرور مثلا حالا بریم سر احتراس درست شد احتراس یعنی دف دخل مقدر یعنی دفع اش دخل یعنی اشکال دف اشکال مقدر در کلام دف دخل مقدر این احتراز ممکنه با یه قید باشه مثلا یه جارو مجبور ممکنه با یه حال باشه ممکنه با یه جمله باشه حالا هرچی یک لفظی شما میارید لفظ حالا چه مفرد تو جمله یه لفظی میاری این لفظه تو کلام آورده شده برای اینکه اشکال مقدره در کلام رو دفع کنه برای اینکه اشکال مقدر در کلام رو دفع. یعنی من یه سخنی میگم احساس میکنم اینجا ممکنه یه نفری اشکال کنید بید. یه قیدی میزنم که اون اشکال دفع بشه در دغنه مقدریم احتراز فرض کنید الان من یه مثال برای شما میزنم درست شد یه آیه قرآن ببین اسلوک اسلوک سلک یسلکو فی العم اسلوک آیه قرآنه یَدک فی جایبک خدا به موسا میگه اسلوک یعنی فرو کن یدکه دست خودت رو فی جایبک در گریبان خودت در یقه خودت دستت رو بکن این یقه زیر بقل آه. مثل که یه نفر کت بوشیده دست بکن بکنه زیر کت اصلک یدکه فی جایبک تخرج بیزا اخروج بیزا تخرج مجزوم شده در مقابل فعل ها بیزا حال از برای فایل تخرج خارج می شود این دست یعنی اگه دستتو کردی دو خارج میشه در حالی که روشنه بیزا سفیده بعد میگه اینم یه آیه و معجزه دیگه چون موسی دو تا ماجزه داشت یکی عصا بود که مینداخش دام شد یکم یه دستی داشت که میکرد زیر بغل در می آورد این دست نورانی بود دست روشن و سفید بود درست شد میکرد زیر بغل در می آورد مردم می این دست پرتاحفشانی افشانی کنه این دست سفیده و ایزاه گویا خدا گفته بود دستی باید این رو بگیره که اون حسار رو که مثل بومبهتون بوده که این دست هم دست مقدسی بشه دیگه. خب تخرج و ایزار. اگر همین جا خدا وای میستاد مو گفت این یه معجزه دیگه یه نفر ممکن بود اشکال کنه بکنی این چه معجزه الان کدوم یکی از منو شما حاضریم دستمونو بکنیم بگیم دستمون اینطوری بکنیم توی یقمون در بیاریم ببینیم سفید شده مثل اینکه کردیم توی پیسه آردو در بود. اگر این باشه که یه دست من بشه مثل کسی که دستو کرده تو کیسه آرد دره سفید سفید یه دستم یه رنگ دیگه قطعا دست کش دست میکنم را میافتم دنباله بگید دکتر پوست و پلاستیک و غیره که اینو درستش کنی ولی اینکه که نیست که ها درست شده نه؟ دستو بکن تو یه در میاری انگار کردی تو کیسه آرد سفید این اشکال پیش می آده خب این که زشت میشه این دست که زشت اون موقع دست ناهمگونه با دست است این چه جوری شد که گفت آیتونخرا یا آیه دیگه‌ست پشتش میگه من غیر سوئن این من غیر سوئن یعنی در حالی که زشت نیست سفید درخشانه اما بدون زشتی دلچسب قشنگه یعنی میدونم چیه این دسته مثل دستی که تو کیسه آرد کردی نیست بلکه مثل دستیه که یک حالت مغناطیس پیدا یعنی شما دوتا آهن دارید از ظاهر شکل همه اما یکیش آهن روباست هرچی رو میگیره جذابیت داره ظاهرشونه این اونطوری میشه یعنی این دست یک حاله از نورانیت یه حالی از مغناطیس داره قلبها رو جذب میکنه همه نگاه به این دست میکنن شیفتش میشه اما وقتی کنار هم بذاری هیچ فرقی با هم دیگه نداره مشخص این من غیر سوئن برای همین آباده شد بدون اینکه زشت باشه بلا چرا گفت ممیدون خارج میشه سفید بعد گفته بدون یه ذره زشتی چون احساس کرده اگر بگه تخرج بیزا یا اتبا بگم یا اصلا زشت کجاش قشنگه نگاه کنید احتراز رو چی میگه خب آیرم مثال زدم دیگه اصلک یدک سی جیبک تخرج بیزا من غیر سوه میگه احتراز و یکونو هینما یعتل متکلم احتراز جاییه که متکلم میاره به معنی یک معنا و مفهومی رو میاری یمکن و انیت خلالی هفیه لومون ممکن است داخل بر او در این معنای که آورده لوم یعنی اشکال یه ملامت و اشکالی بهش وارد بشه یه دخلی اشکالی هست متوجه اون میشه فیفتن و لزالک فتن یفتن و یعنی هوشیار میشه متکلم نسبت به این اشکال یه ای اشکال رو درک میکنه و یعتی به ما یخلص و همه. بعد یه قیدی میاره او رو از این اشکال خلاص میکنه دفعه دخل مقدر میشه احتراس اله احتراس و یکون هی هین اما المتکلم به معنن یه معنا مفهومی میاره یمکن و عنیت علیه فیه لومان ممکنه که اونجا اشکالی وجود داشته باشه براش و یفتن و این زود متوجه میشه و یه به ما یخلص صومه و مطلب رو زود با یه قید برطرف بکن حالا یه مثال زده تو کتاب نگاه کنیم منم یه آیه مثال زدم. میگه قال ابن المعتز، آقای ابن الموتز مثال زده یسف و فرسن توصیف میکرده اسبانی رو اسبی رو که سوار شده بوده و اسبانی رو که سوار شده بودن داشته توصیف میکرده اسباشون میگه سببنا سبب یعنی ریخت سبب الماء یعنی آب و ریخت سببنا علیها یعنی ریزاندیم دیم فرو ریختیم بر این اسبان علیها میخوره اسبان سیات انا سیات جمع صوت تازیانه شلاخامون و تازیانه مثل بارون ریختیم بر این اسبان مثل باران شلاغ زدیم به این اسب و چی شد فطارت بها به ایدن سراون و ارجلون یعنی و ارجلون سرا طارت به یعنی پرواز در آورد به بها پس به پرواز در بود اسب‌ها رو چی ایدن سراون دستانی سری و ارجلون سراون اون اجازه حصر داره و پاهایی سری دست و پاهای سری اینا اینا رو به پرواز داره یعنی مثل باران بر تن این اسبان شلاق زدیم، شلاق ریختیم. اسب رو شلاق زدیم اسبامونو، پس این ها رو به پرواز در دست و پاهای سری اونها. یعنی دیگه شروع کردن به سرعت رفتن، باز انگار داشتن میپریدان. یعنی اینها رو ما با شلاخ ها مثل بارون به تنشون شلاق زدیم. و اینها دست و پاهاشون اونها رو به سرعت به پرواز در بود سریع حرکت کرد. خب. اینجا یه اشکال تو کلام پیدا میشه اگه اون ظالمین نباشه. نه آقا این اسب که اسب نبودن شما سوار شدید، اون یابوس سوار بود عصبی که شما مجبور شدید شخم شخم شخم شلح بهش بزنید تا این اسب تون بره. این اسب درد نمیخوره، اینا درشکچی‌ها دیدید تق تق میزنن تا این اسب را می که میزنه یه ذریعی نمیزنه چرا شد نمی شده شده باید اصبیست که اون اصبی که اصبست برای شکار و برای جنگ و اینا بکنه مثل اصبایی که تو مسابقه ها که از رو موانه میپرن و اصبایی بلان شما کدومشون دیدید؟ دستشونین اصبای رو شلاخ باشه تق و تق بزنن به اون بره یک خودش میره اگر این ظالمی نه نبود مغره ها نه تنها اسبوت و متن نکردی بلکه حجبشون هم کردی گفتی مثل بارون شلاق زدیم به اونها تا اینا تون رفتن گفته ظالمی نه, ظالمی نه یعنی ما ظالم بودیم ظالمانه میزدیم اون بیچاره ها اسب بودن درست بودن خودشون میگازیدن و میرفتن ما زالمانه برتن اونها شلاق میزدیم چون ما قبلا یابو سوار میشدیم اسب خوب سوار نمیشدیم با شلاق میزدیم میرفتند هم که سوار شدیم اینها با اون که درجه یک بودن و خودشون میرفتند، ما طبق عادت ظالمانه اینها رو میزدیم. این م قشنگ این شد مت ما ظالمانه اینها رو می نه اینکه اینها مستحقه زدن اینها مستحق زدن بگید نبودن ما ظالمانه اینها رو بگید میزدیم. قشنگ گفتا درسته؟ نگاه کنید بیت عمت... بیت آقای ابن معتز رو تعمل ال مثلا اخیر المثال اخیر تجد اننا لو اسقطنا منه کلمت ظالمين اگر ما ثابت کنیم از اون کلمه ظالمین رو لا توهم الصامغ ان نفر است ابن المعتز کانت اسبش مشاستی کودنی بود بوده بو بود تستحق الذ مستحق زدن بوده میزدی میرفته نمیزدی نمیرفته میگه و حاض فللاافول مصئیتشون ااصل اون مت میکردهیم گفت ما یاابو سوار شدیم پدرمون در اومدننگقل شله زدیم دا رفتن بعد میگه که زیادت و توسم با حاضح زیاده و کللویت این زیاده احتراس این ظال رو گفته وخوای که می اونا اسب خوبی بودن خودشون میرفتن ما طبق عادت چون یاابو سوار بودیم شلاق می زدیم و زیادت كل زياده لدفع ما يوهم هو مما ليس مقصودا و همچنین هر زیادایی که بیادن کلام ها حال باشه جار و باشه حتی جمله باشه برای دفع ایهامی که از کلام وارد میشه و اون ایهام مقصود نیست یک اشکالی وارد میشه و اون اشکاله میخوایم دفعش کنیم این رو با یه قیدی دفت میکنیم اون قید رو بهش میگن احتراس درست شد اون رو بهش میگن احتراس کل باب ایجاز و اتناب و مساواه تموم شد نموزج موند یه چند تا نموزج انشالله جلسه بعد براتون میخونم و یک بحثی هم داره که اثر علم معانی در بلاقت کلام که اصلا جمعبندی هست توی جزع مبحث نیست و علم معانی تموم میشه و یه مبحثی در مورد علم بدی داریم که انشالله در خدمت شما خواهیم بود همه رو به خداوند سبحان میسپرن و ما به بهترین شکلش هم این مباحث رو براتون بیان کردیم خودتون هم راحت میتونید اینها رو یاد بگیرید اگه یاد گرفتید ما سازی فارسیش می‌کنید با شعرهایی که نمونه هایی که از آیات و شعر و من همگاهی از آیات براتون میگم نفس میکنید و مطالب رو در خوب یاد میکنید از استرس و استراب هم بدور باشید انشاءالله که خداوند همه شما رو سلامت بدارد موفق و محید و منصور باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکا.